خوشناد را مزدا اشم بهو و اشتمستی و اشتاو استی و اشتاو احمایی و اشتایی عشم به خوشنادی اهورا مزدا خداوند جهان و خرد و با درود بر روان و فرابهره اشوزر زرتشت اسپانتمان و تمام زنان و مردان نیک و پارسا گیتی و با درودی گرم بر همه شما شنوندگان گرامی رادیوی زرتشتیان در سراسر سر گیتی و همه باشندگان اکنون در این تالار امروز پنجشنبه دیگر است روز آذر و ماه اسفند سال هزار زرتشتی برابر با سه وام و ما و 21 فبریه 2013 ترسایی پس از دو هفتهی در هستم تا گفتارهای پیش رو پیری کنیم و همچنین بتونیم به جستارهای تازهای هم بپردازیم بار پیش دوستان گفتگو از فرایند نوزایی فرهنگی اجتماعی یا همون رنسانس در اروپا بود و انگیزه به اون هم دوستان صدا هست داری و انگیزه به اون هم فراگیری از گذشته و تاریخ است. و که ببینیم چه همانندی هایی داره با شرایط کنونی ما ایرانیان میتونم بگم که گرفتار شرایط کنونی شدیم و هستیم و اینکه راه برون رفته از اون رو بتونیم با نگاه به فلسفه خودمون به گذشته های خودمون به ریشه و فرنگ بنیادین خودمون و عرضش های والا و انسانی و آزاد و آباد کن اون بتونیم پیدا کنیم و امیدی به آینده بهتر رو زنده نگه داریم و با پرداختن و کنش به اون ها هم خود رو آزاد و رعا کنیم همین که مسئولیت و خیشکاری خودمون رو بپذیریم این بار اون گفتمان رو که ناتمام بود پی میگیرم و به پایان میبرم در بخش اول و اگه زمان بود که میشود گفتمان دیگری رو اغاز میکنم درباره تاریخ خودمون اون بخش اون روند و فرایند فرهنگی دینی اجتماعی پس از تازش تازیان به ایران زمین و فرایند و چگونگی پدیدههایی مانند عرفان و تصوف و پیدایش اون در از فرهنگ کهن ایرانی و ویژگی های تاریخیش و همانندی یا ناهمانندی هایی که با دیگر دبستان های تصوف میشه گفت دارد نگاهی مندازم چرا که این پرسشم هم کماخان از گاهی وقتا شده و میشه و گفتم که یک نگاهی هم به این پدیده ارفان و تصوف مندازم اما نخست ادامه بدیم داستان نوزایی اروپا رو خب بال پیش اشاره کردم که این جنبش از ایتالیا که خودش مهد تمدن باستانی روم بود آغاز شد و اگه بخوایم بگیم هدفش آرمانش از یک سو کنار کردن و بی اثر کردن اون دین کلیسایی بود که با اون اسکولاستیک خودش و شیوه های برخورد خشونتبارش با دیگر باورها و دینها به ویژه اون دین میترایی یا مهری برخواست از ایران بود که بهش دوران تفتیش عقاید میگفتند یا انگیزا و اینکه مسیحیت سازماندهی شده و ساخت و پرداخته شده در سنای روم و دولت روم برای سربازگیری و در موقع جنگ با ایرانیان ونییررومنتر کردن خودش بود و اینکه اروپاییان پسر با دوری گزیدن از این سیستم تفتیش عقایت آغاز کردن به ساختن یک شهریگری مدرن که همراه بود با رشد تولید و بازرگانی و صنعت و به همراه اون رشد دانش و فن و هنر و، دانشگاه ها اومد حتی به گونه ای که کشیش ها رو هم به خاندن و آموختن دانش نوین کشند حال برخی از اونها رو و میشه گفت که فلسفه بیشتر بیشتر جای اون مسیحیت رو گرفت این رو گرفت و فیلسوف‌های های کهانتر مانند ارستو و افلاطون بیشتر مورد قرار گرفتن یعنی از گذشته اینا رو کشتن بیرون که امروز در ادامه کمی از آنچه که این دو یعنی ارسطو، و افلاتون هم گفتن و میاندیشتن یک می کمی از اونا میگم که کمی از اونا گفته باشیم تا بیشتر آشنا بشید و همچنین چند شخصیت دیگه در پیوند با این جنبش نوزایی و به وجود آمدن اون که به نام اومانیسم یا هومانیست یا انسانگراهی نامور هستش چه شخصیت هایی در بودن به کوتاهی فقط اشاره می و بعد خودتون برید و در موردشون اگه دوست دارید بیشتر. خب در صده های میانه اروپا چند تا از نبشته های که به اسلام و مسیحیت گره خورده بود شناخته و نامور شده بودند. از پلاتون که در زبان فارسی عربی شده شده افلاطون، آنچنان چیزی در دسترس نبود اما پس از صده چهارده میلادی ناگهان نوشته های این افلاطون میاد بیرون در دانشگاه ها پخش میشه و دانشگاه ها بعدشون نمیومد و سپس در روند رنسانس و شکوفایی فرنگی نقش این فیلسوفان یونان به ویژه افلاتون و فلسفهش از همه برجسته میشه پخش دیالوگ های افلاتون. دیالوگ یا گفتمان ها این نوشته های افلاتون بود که در گفتمان بین خودش و دیگری یا دیگران مسئله فلسفی رو در واقع به میون میشند. یک حنایش یا تأثیر ژرفی بر اون نخبگان جنبش رونسانس میذاره آنقدر زیاد بود که حتی گفتگو از جونسانس افلاتونی بمیدون میاد میدونیم که اون جهان ایده ای افلاتون خیلی ناموره که در عربی بهش میگن متل، متل افرادون یک خودش برگشتی یا برگرفتی یا رونوشتی بود از اون جهان فروهری فرهنگ و فلسفه ایران پیش از افلاتون و از همین رو هم به افلاطون زرتشت دوم هم گفته شده. در دوران خود افلاطون کسانی بودند به نام سوفیست ها که روشنفکران به اصطلاح اون دوره یونان بودند و میخواستن که دانش رو در میان مردم رواج بدن تا اون به اصطلاح دموکراسی که خودشون میگفتن گسترش پیدا کنه. البته این بعد اون باشه این دموکراسی که خود افلاطون هم نگاش می‌کرد. به این دموکراسی در میان توده مردم یا عوام باوری نداشتند بلکه به اندیشمندان و نخبگان جامعه بوده که اهمیت می‌دادند این رو باید این رو هم ببینیم در نظر داشته باشیم که زمینه شکوفایی و گسترش دانش و فلسفه در جهان اون روز اروپا پیشینش در دموکراسی جهانی هخامنشیان فراهم شده بود در اون شاهنشاهی امپراتوری جهانی ایرانیان خب بردهداری زشت بود خواسته ها و آیین ملت ها به رسمیت شناخته شده بود زنها از حقوق شهروندی برخوردار بودند و میدانیم پارسه یا تخت جمشید که یک نوروزگاه بود و گرانیگاه بزرگ عاشقی و آزادی جهانی یک هنایش ژرفی بر ملت ها و از اون جمله در میان یونای ها داشت با این همه فلسفه یونان توی اون زمان نتونسته بود راهگشای اون دموکراسی بشه که در ایران حقامالشی بشیده بودن برای نمونه در یونان بردهداری وجود داشت حسا در ایران نبود و در یونان زنها و مردها برابر نبودند حالا خیلی جالبه که با این وجود یونانی ها غیر یونانی ها رو بربر یا حالا بگیم به زبان خودمون وحشی مینامیدن افلاتون یا پلاتون در 20 سالگی با سقرات که نام مثل یونانیش سوکراتس است آشنامی این آشنایی موجب میشه که زندگی افلاتون راهش دگرگون میشه تا اون زمان افلاتون بیشتر به چکامه و شعر و ادبیات و اینا که خب تو زمان اونام رواج داشت خیلی عرض میذاشت پس از آشنایی با سقراطوس یا سقرات میگن که دفترهای شعرش رو میسوزونه و رو میاره به فلسفه البته این رو هم گفتند که سقراطی یا سقراتی وجود نداشته و این ساخته و پرداخته ذهن خود افلاتون هست اما این رو نمیدانم منم. بر حال این نام سقراط بوده و افلاتون از اون نام می بره و فرسخهی خودش رو به سرا از اون میره. این دیالوگ که همون در واقع پرسی و پرسشگری هست در ایران پیش از سقراتوس شناخته شده بود چنان که خود گاथाهای ازو زرتشت اگر بهش دقت کنیم با چنین روشی به نگارش در اومده با پرسشگری و پرسیس. گفتن که در فلسفه ایده برای افلاطون پایدی یا ایده, ایده مهم بودش که میشه گفت که یهوه و الله یا پدر آسمانی برای دینهای سامی قد مهم بودن افلاطون از جمله میگه ایده ها در بیرون از ذهن انسان وجود دارند و تغییر نمیپذیرند، دگرگون نمیشند و همچنین رویداد ها، رخدات ها، اتفاقات در بیرون از زمان روی میده بدن نمیتونه هم ایستا باشه، ساکن باشه و هم جنبش کنه گاه و زمانی که بدن یا جسم از حالتی به حالت دیگر میره در بیرون از زمان رخ میده تا اون هنگام که بدن حرکت میکنه نمیتونه ایستا باشه، نمیتونه بیسته این رختا درست در میان این دو حالت انجام میگیره که در واقع بیرون از زمانه، تو زمان نیست از نگاه افلاتون روان انسان نمیمیره از بدنی به بدن دیگر و از جانوری به جانور دیگر میره و فرم‌های گوناگون به خودش میگیره تا در نهایت چی به اون جهان ایده بپیوند راه پیدا کنیم ریشه این ایده های افلاطون از اونجا نشی میشد که او میاندیشید در پشت این چیزهای دگرگون شونده پیرامونش یک چیز ماندنی و ایستا وجود داره گفتش که اگر همه چیز دیگر گون بشه پس چجوری میشه دانش دانشانو و از این جهت میان که به راستی دانش چیست و چگونه به دست میاد و سرانجام به اونجا میرسه نچه میگیره که دانش به دنیایی که در گذر هست و هنگامی دیگرگونی هست بند نیست بلکه به دنیای ایده که پا و ایستا هست وابسته است. گفت زیبایی همیشه زیباست اما زن زیبا برای همیشه زیبا نمیمونه برای نمونه ایده زیبایی و دادگری و منش نیکیابد میتونه برای همیشه پایدار بمونه این ایده ها هستن که مندنی هستن حیفت دارن. خب از پیتاگورس یا همون که بهش میگیم فیساگورس آموخته بود که که اون میگفت پیتاگورس میگفت که بدن انسان به جهان دگرگون شده وابسته است و روانش به دنیای ایده ها اونجاست که انگام زایش از اونجا میاد به بدن انسان میاد و انگام مرگ به اون دنیا برمیگرده تا برای انسان دیگری به صلاح آماده بشه تلاشی رو که روان آدمی انجام میده تا خودش رو به دنیای ایده برسونه مهر مینامید و این که روان میخواد از زندان تن تنرها بشو به جهان ایده برو که اینها خب میدونیم بخشا میشه گفتش که همون فلسفی جهان فربحری یا دو جهان دیتبی و مثلا نوی در فرهنگ و فلسفی ایران هستش که خب پیشکام فیرستوفان یونان بوده این آقای افلاتون در آکادمیش آکادمی داشت تنها نخدگان را آموزش میداد و به اونا اهمیت میداد که در اونجا ریاضی و دیالکتیک و ستاره شناسی و فیزیک و اینها درستاده میشد و اگرچه اون همیشه در مثلا فراگیتی سرگرم فلسفه بود اما برای جامعه پاک و پیشرفته روی زمین هم دلسوزی نشون میداد. کمی دیگه از دیدگاه های افلاتون رو میگم برای آشناییتون دیدگاهش برای دولت ایدئال از جمله اون بود که بهترین جاگاه برای دولت خوب در دنیای ایده است چون دگرگونی دنیای مادی رو اهریمنی و اون دنیای ایده رو ایستا و احورایی میدونست افلاتون بخش اندیشه یا مغز رو به رهبران جامعه پیوند میداد و میگفت این گروه باید تا جدای دیگران زندگی کنه مالکیت فردی میگفت مالکیت فردی که موجب رقابت میشه باید گروهی بشه خانواده موجب میشه که زنها نتونن مانند مردها پیشرفت کنن بچه ها بهتر گروهی در بیادن زنها هم باید در رهبری شرکت کنند و برای اینکه رهبران بتونن درست جامعه رو رهبری کنند باید دانشگاه برند و آموزش ببینن و از دیده او هر کسی که آموزش ندیده نمیتونه رهبر بشه. اندیشمندان آموزش دیده باید رهبران جامعه بشن. این کمی از افلاتون هر تو هم در کنار این آکادمی افلاتون یه چیزی به نام، لیکیوم یا لایکیوم لیسیوم برپا کرد که میشه گفت نخستین آرشیو آرکایب یا آرشیو برای گروه بندی بود از نگاه اروپاییان شناخته میشه عرستو چی میگفت؟ عرستو میگفت روان انسان است، اما اما کلیسا و بسران مسجدون صده ها این میگفت است ولی اونا ترجمه کرده بودن است. ارسطو میگفتش که انسان یک جانور سیاسی است و پاسخ عرستو به افلاطون این بود که مفهوم های کلی پندارهایی هستند که در ذهن آدمی نقش میبندند تا میشه گفت شناساگر یک گروه از اشیای همجنس باشد. باشه. درحال ها زیاد به این مسائل افلاطون رسون نمیپردازم که از موضوع خارج نشم. پس از عرستو در دوران مسیحیت و اسلام چی شد؟ این انسان گناهکار شد و اون پدر آسمانی و الله شدن چی؟ آفریننده یا خالق در فلسفه آفرینش این دینها انسان از آغاز میشه گفت گناهکار به دنیا میاد و این تنها خدایان خالق هستند که میتونن اونها رو ببخشن از نگاه این ادیان فاصله بینهایتی میان خدایی که با امر و از هیچ میآفرینه با مردم وجود داره عرفان اروپا در صده های میانه کوشش زیادی کرد تا این فاصله رو ربویه در, در مسیحیت از میان برداره اما میش گفت که نتونست پیشرفتی بکنه و تا کنون هم در ادیان یهود و و همچنین اسلام همون دیدی که انسان بدهکار و گناهکار را شده بر جای مونده پیشگامان رونسانس اومدن این رو به چالش کشیدن شخصی بود به نام پترارکا فرانچسکو پترارکا یا پترارک. که این آقای یک اندیشمند بود تاریخ نویس بود نویسنده بود چه کام سرا، به صلاح اومانیست نخواستین اومانیست بود در واقع میشه گفتش که یکی از پدران این رنسانس به شمار میاد، بنییان گزارش بود در واقع. توی شهر بولونیا درس میکن و این شهر رو که از امپراتوری روم جدا شده بود دوست می داشت بهقول من رو. میاد یه سری شروع میکنه روی مثل نویسندگان کهن روم رونا بررسی میکنه. نوشته هاشون اون چیزهایی که ازشون بود میخونه کساری مثل نامهایی هست سیسران، ویرجیل، سنیکا اینا ها اجازه بسرها سخنوران و آگاهان روم کهان بودن زبان یونانی رو میاموزه و نوشته یونانی قدیم رو شروع میکنید ترجمه کردن و توی یکی از این کتاب هم یه بخشی داره که به می می‌نویسه که میره بالای کوه آلپ و اونجا می‌خواد بگه که به صورت نمادین انسان انسانی که بالنده است یا به قول ما فارابهر داره یا اون مرغ چارپر که می‌تونه پرواز کنه و از کوه ها بالاتر بره و یعنی انسان رو که اصیل زمین و یا نیروی آسمانی است دراد یا نمی‌پذیره می‌گه انسان می‌تونه بر همه اینا پیروز بشه و از همه اینا بالاتر بره این آقای پترارک یا پترارکا میشه گفت برانگیزاننده مردم به فرهنگ باستانشون بود و بر درست بودن خوشی و لذتهای زندگی و همچنین شادزیستی در برابر دینها و فرهنگ سامی که دنیا رو دار فانی میدونستن پافشاری می‌کرد. و اون اسکولاستیس اسکولا... اسکولاستیسیزم یا همون میشه گفتش که فرا باورای طبیعی نگاه کردنشون رو که از زندگی به دور بود مردود میشه همجره گفتم نخستین هومانیست بود و نخستین ای بودش که در اروپای اون روز اومد آشکار و با همه توان به به زندگی این جهانی و شاد بودن، رزب بودن، زیبایی اون همچنین راه به دست آوردن این شایستگی ها در مورد اینها نوشت و بسیاری از نسل پس از خودش رو میشه گفت زره کرد و بیشترین تاثیر رو گفتم روی برپای این جنبش نوزایی اروپا به پایتخت اروپایی سفر کرد به پاریس، آلمان، روم و وقتی میدید این ویرانه هایی که از قدیم به جامونده و نشانه های بزرگی قدیم بوده افسوس می‌خوردش و از اینکه چقدر پایتختای اون زمان خودش به اصطلاح بدنما و متروک بودن بیشتر می می‌شد در یک کلبه دورافتاده کوهستانی یکی از کارهای بزرگش انجام داد که به اصطلاح نامه می‌نوشت به افراد تاریخی گذشته و به این وسیله در دل میکرد و مساعده عنوان میکرد پس از اون که اکادمی افلاتون توی شهر فلورانس دوباره ساختنش، این اکادمی که قدیم افلاتون داشت اینه دوباره ساختنش. و از اونجا دوران شناخت تاریخ و فرهنگ و هنرشون می میرسه اما هنوز فلسفه درست به میان نیمده بود و تا فلسفه اومد بعداً پیشرفت به سراح بیشتری انجام شد و این جریان هیومانیست ها یا هومانیستا یا انسان ها در واقع از اونجا به وجود اومد که اینها چی بودن؟ به فلسفه زمینی اهمیت میدادند و اون فلسفه کهان یونانو که در واقع گفتم افلاتون اون هسته فلسفه تشکیم می اون رو برداشتن و بهش عرض گذاشتن و با, با اون فلسفه در برابر اون مسیحیت دورانشون ایستادند و انسان رو گذاشتند تو مرکز به جای اون خدای قدرتمند و بسرها از سخیر رو اینها که در آسمان نشسته بود انسان رو گذاشتند تو مرکز و به این روش یک نگرش و سیستم فلسفی نوین رو برای زمان خودشون آوردن. برها اینها بودن که شروع کردن کتاب جمع کردن مثلا دستنویس های نوین رو نوشتن در سراسر اروپا پخش کردند. بعد یه سری هم بازرگان پول لاشتن اومدن و در واقع به کمک اینها و یکی از این خانوادهی بود به نام خانواده مدیسی که اینا بازرگان بودن و اومدن و پول گذاشتن تو این کار و این ادبیات و دانش و فلسفه که داشت رواج می گرفت رو بیشتر پخش کردن استادانی رو بردن به شهر فلورانس به جوان ها شروع کردن اون زبان و ادبیات باستانی رو دوباره آموزش دادن یه شخصی بوده مهم کزیم از این خانواده که دوازده سال خودش توی اون مدارس دانشگاه کلاسی که مثلا یونان و روم باستان رو درس می داد و نسخه های زیادی نوشته شد در اون زمان یک تاریخ نویس فلورانسی می نویسه که اگه ادبیات یونانی صد درصد از بین نرفت تا مایه بدبختی انسان ها خودشون و اگر نوشته های لاتینی بر جای موندن که مایه مندی گسترده مردم است، این همه را ایتالیا همچنین همه مردم جهان مدیون خرد و تلاش خاندان است. بران خاندان کمک کردند که این مساله بیشتر روش پیدا کنن پس میشه گفتیم چی؟ پس گذشته خودشون رو برشن به اون پایه گذاشتن، از اون ریشه گرفتن و دوباره نو شدن دوباره زنده شدن این زبان لاتینی رو گسترش دادن و نگاه کنیم به خودمون ما این زبان پهلوی رو اگه نگاه کنیم که مادر زبانهای یا گویش هایی بخواهی میگیم دریو، و کردیو، و دیگر گویشها ها مثل مازندرانی و گیرکی و لوری و همه اینها در فقیل مادرشون همین زبان پهلویه که بیش از هزار سال زبان بزرگترین امپراتوری جهانی بوده و حالا یا خود خودتون بسنجید دیگه خودتون خودتون مقایسه کنید اگر اون راهی که اروپا یا رفتن و رسیدن به مدرنیت حالا بخوایم بگیم آیا ما هم اگه بخوایم بریم یکی از راهش در واقع پاک کردن زبانمونه و اگر بتونیم زبان گذشته رو به گونه‌ای البته به شیوه مدرن دوباره بیاریم بالا و باش کار بکنیم که خب این دیگه بستگی به خیلی داره. به هر حال این داستانی بود دوستان که به صورت خیلی کوتاه فشرده میشه گفتش که از داستان یا جریان نوزایی فرنگ اجتماعی در که با هم نگاهی بهش کردیم خب اگر اجازه بدید اکنون ما یک آساک کتایی بگیریم و یک موسیقی زیبایی هم بشنویم و بر میگردم و به خودمون میپردازم به کشور خودمون و آن چیزهایی که گفتم در مورد سخن خواهم بود با سپاس پس ما را به یک موسیقی زیبایی مهمون کنید سپاس گذار با سپاس فراوان و با درود دوباره و همه شما خب گفتیم که حالا میخوایم از ایران بگیم واز و از ایرانمون کمی البته خب شیوهای های گوناگونی میشه به این مسئله پرداخ و در هنگام های گوناگونی میشه به اون پرداخ گفتم این بار میخوام یه خورده از پیش زمینه های رسیدن و چهگونگگی اگه من گویم عرفان به عنوان یکی از در واقع راهها یا واکنش ایرانیان به آن چه که بر سرشون اومده بود در واقع میتونم بگم بود و از اونجا که گفتم چند بار پرسش شده بود این مسئله رو مطرح میکنم که در به حال در این زمینه چیزهای دیگری هم همیشه گفته میشه و میتونه پرسش‌های دیگری به میون بیاد و خودش زمین ساز گفتمان های دیگری میتونه بشه و ابته نیاز به دوباره گویی نیست ولی میخوام بگم که آنچی که من نگاه میکنم میگم همیشه یعنی همیشه تراش با این هست که راستی ها را آدم بگه نه, نه این که به خاطر حالا اسمشو بذاریم ترس و تردیدها ها آدم راستی ها رو را به زبان نیاره و نگه و نه این که آنچه که راست نیست راست نشون بده نباید فریب بدیم و نباید بگذاریم فریب بخوریم آره برمیگرم به زمان ساسانی ها. خب به راستی باید گفتش که اون شهریگری یا اون تمدنی که در زمان ساسانی بود از جنبه های اجتماعی و همچنین دید مردم به زندگی، آفرینش، بعد کشاورزی، بافندگی، ساختمونسازی، کارهای دستی، فلسکاری، آشپزی، موسیقی، پیکر تراشی، و دبستان ها، ها و همچنین دیدگاه ایرانی در باره زن، زن و, مرد و غیره نسبت به اون حازمان ها و جامعه‌هایی که اون زمان وجود داشتند چه از تمدن بیزانس و روم بگیریم و چه آنچه که پس از عرب و اسلام به وجود اومد یه گردن بالتر بود در ایران اون دوران بردهداری وجود نداشت در جامعه شهری ساسانی سازمانهای گوناگون سنفی اجتماعی پدید آمده بود رفتار و کردار و اندیشه نیک بخش پایهای از باورهای ایرانیان بود موسیقی شادی اهمیت ویژه خودش رو در زندگی روزانه مردم داشت دانش آموزی هنر ساختن دانشگاه های مانند گندی شاپور، استخر ری نیشابور برخ همه اینها اون مردری یا ارسیه فرهنگ و تاریخ مردم ایران زمین بود اما در عدیانی که پس از آن آمد به در اسلام زندگی میشه گفت بیهوده یا درک همیشهگی فنا بوده که البته در میخواهم بگم زندگی اندید مردم ایران چنین نبوده بلکه کار و سازندگی بوده و همجای گفتم شادی و اهمیت به خونه و همه اینا زندگی ایرانی یک گوهرش افزایش و بالندگی خرد و گسترش شادی در روی زمین بود و تاریخ پهنه فنا و یا غم و بدبختی نبود مردم ایران با عبرتنامه ها و افسانه های کتاب های دیگر که برای جرف ساختن درک فنا و بیهوده بودن زندگی در این نوشته بود آشنا نبودند که در ترس از خشم بسیرا الهی زندگی کنه. ایرانیان با فرهنگ و جهانبینی یا آن شیوه زندگی که داشتن خب شکست و پیروزی های فراوانی رو به خودشون دیده بودن در سالهای پایانی پادشاهی خسروپرویز از رومی ها شکست می که خب یه خود شیرازه کارها اصلا گسیخته میشه. و در اون بره تاریخی است که مردم ما با تاخت و تاز تازیان رو در رو میشن با همه ایرانی ها از شهرها و روستاهای های دور و نزدیک گرد میان و تلاش فراوانی رو می تا جلوی اون خارتگران گرسنه رو به قول معروف بگیرند اما نتونستند در مورد در برابر اون بسرها ارتش گرسنه و برحال خونریزی سادهی کنند و بدبختانه بسیارشون میمیرند یا اسیر میشند و نمیتونند به نتچه برسند بله، چنین مردمی که بردگی رو ننگ بشریت میدونستند و هنگامی که امپراتوری جوانی داشتن و میتونستند دیگران رو در واقع برده کنند این کار نکردند. و به اونها آزادی داردوند اما در اون روزگار که از رومی ها به زانو درمیان در چندین جنگ خونین از تازیان شکست می و دخواه هزار زنو فرزندان اونها به به بردگی برده میشه خب تازی هم که در اون جنگ کیروده بودند و با میشه گفت فرهنگ و تمدن که در حال در ایران بود بیگانه بودند یا زندگی خب بدوی و صحرانشینی داشتن و انگام چیره شدن و پیروزی میخواستند که اون کتاب و توانین خودشون رو که به اونها اجازهه چپاول و گری و خشونات می بر مردم شکست خورده در واقع فردان روا حاکم بکنند پس از شکست ایرانی ها در اون جنگ های خونین سرکوبی و فروپاشی ساختارهای فرهنگی و اجتماعی ایرانی گام به گام آغاز میشه. با جلوگیری کردن از عرفبا و زبان پهلوی نابودی دانشگاه و سوزاندن کتاب ها چپاول و خرابی گنجینه های باستانی و قارت اشیاء هنری شکستن ابزار و آلات موسیقی گذاشتن نام های عربی بر خودشون و فرزندانشون از میان برداشتن هزاران نماد یا سمبل فرهنگی دیگه برحال یک زمانه اما انگیزی رو برای نابودی فرهنگ ایران فراهم بیاره. با خرابی شهرها و نابودی ها و از میان رفتن اون های گوناگون شهری خب مردم هر بیشتر بی سواد میشن و میشه گفتش که به زور روستایی میشن که به ناچار چی بیشتر موجب افت فرهنگی میشه. و با فرمان روایی تازیان مردم ما بیشتر از ده نست از دانش آموزی و سواد در راستای فرهنگی خودشون بی بیبهره میشن در اون دوران سیاه فرهنگ و دانش ایرانی که میرفت رو به نابودی و یه سری قوانین به صلاح خوب اسلامی بر دست و پای مردم اسیر و در بند ایران بیشتر بسته میشه اما با همه اینا نتونستن بنیادهای فرهنگی رو که ریشه های جرفی در ذهن و روان ایرانی داشته به این سادگی از میان بردارن. خب در آغاز ایرانیان به زور شمشیر مسلمان میشنن و اونها البته اینو دین نمیدونستند چون دین داشتن یا نداشتن رو گزینش خود انسان میدونستند و خب به همین دلیل به اینها که به زور میامدن یه زور رو بهشون تحملیل بهشون احریمان زادگان میگفتن و هر روی در دوران این دوران خشونتبار گروه هایی از ایرانیان به ناچار خب دین جهید رو میپذیرن که این به اصطلاع مسلمان ها رو در خراسان بزرگ بشون گفتن چی؟ تبر مسلمان و خب میدونیم که با گرفتن جزیه و مسئله دیگری که بود حال خودش گونهی فشار و زور بود برای سامو آوردن ایرانیا. بر حال این خب این روند همچنان دوام پیدا میکنه که در کشورهای دیگر هم بود فقط خب ایران نبود در مصر بود، سوریه ها بودند همه به ها هم به همین سرنوشت در واقع دوشار شده بودن. Uh, گروه بزرگی از ایرانیان خب مجبور بودن وانمود میکردند به اسلامی بودن و گروه هم میخواستن که هرچی بیشتر به اسلام رنگ و بوی ایرانی بدن چنانچه چه میدونیم برخی از ترجمه های این آیه های قرآن که ایرانی کردن حتی برای عرب ها هم میشه پذیرفته نیست uh, گروه بزرگ دیگر هم که میدونستن که آقا این کار شدنی نیست چون آب از سرچشمه گراروده است و آنهایی که ما مینامی مینامیم، عارفان بزرگ ما هم از این،, از این گروه در اومدن که مجروب شدن راهی در پیش بگیرن خب میدونیم که مردم در هنگامه های شکست و نامیدی واکنش های گناگونی رو از خودشون نشون میده. گروهی از ایرانی ها هم به دنبال رایچاره یا اندیشهی میگشتند که بتونند در سایه اون از رویدادهای های خشونتبار زندگی یک گریزی داشته باشند. یکی از گرایش های این تصوف در واقع همون دنیایی بود که گروهی از مردم پس از شکست و ناتوان شدن لفرنگی خودشون به اون روی آباد و راه رهایی خودشون رو به ناچور در اون جستجو کردن که ویژگی اونها ناامیدی و دسترستن از دنیا و هرچه که در اون بود بود هنگامی که در آغاز این اندیشه های یا عرفان به وجود اومد ایرانی ها دوران کشتار و خشونت خلفای اماوی رو در واقع میگذاروندن با روی کار امدن عباسیان و پس از کشت شدن ناجم و مردانه اون ابو مسلم خراسی اینا دوباره جنبش های ضد تازی و ضد اسلام عجم در اون دوران تاریخی ده ها جنبش گوناگون سیاسی اجتماعی برپا شد که به دست تازیان که خب ارتش نیرومن دیگه به وجود رو خب سرکوب می شد. از این رو اون اندیشه ورزان، جنبشه اگه بخوایم بگیم جنبش فرنگی انفان نمیتونستند نمیتونستن جهانبینی روشن و چارچوب ویژه خودشونو به سادگی بیان بنا کنند ایران که بخشی از فرهنگ و فلسفه زندگی ایرانی بود و قم از دست رفتن اون در دل ایرانیان هنوز زنده بود اون فرهنگ و فلسفه و به این ترتیب اونها رو به پایداری در برابر به صلاحات آزیان برمی و آرزوی اون چیزهایی از دست رفته که از پدرانشون سینه به سینه رسیده بود افسوس میخوردن و هی راه راه چاره بودن پس از اون دو صده اشغال ایران زمین به دست تازیان اون پیکارها و جانفشانی‌های ایرانیان خب به گونه یه مقالی به بار میشنه دوباره یه سری خاندانهای ایرانی میان سر قدرت، فضای سیاسی فرنگی کمی بازتر میشه و در اون زمان است که فرهنگ و جهان بینی ایرانی کمی دوباره شروع میکنه به شکوفا شدن در اون دوران شکوفایی و دوران تاریخی تازه بودش که بخشی از فرهنگ و فلسفه ایرانی تونست در پوششی که سپس نام تصوف و عرفان به خودش گرفت آغاز به شکوفایی بکنه ببیش در دوران سامانیان و دیلمیان که اندیشه و پرداشتهای فرهنگی ایرانی میتونستی خود آزادانه تر در واقع به میدون میدین در, در این میدان نبرد فرهنگ به اندیشه ایرانی بر ضد قوانین بسرا تازیان به ناچار در میان خودش خود مسلمانان هم یه روندی پرید اومد که به دگرگونی اسلام شریعت به اسلام طریقت در واقع انجام مید ببینید در ایران که بیشتر جنبه فلسفی داشت و خب تلاش میکردن که یه پاسخ خردمندانه به پرسشاب و ناگواری های زندگی بدن پس از چیرگی نخستین جنبش ادبی ایرانی که تاثیر زیادی بر جنبش های پس از اون که سیاه جامگان و جنبش های پس از اون هست و سرانجام منجر به پیروزی دولت های ملی سفاریان و سامانیان و همچنین دیلمیان در ایران شد یک جنبشی بود که به نام شعوبیه نام داشت و بویانگزاران این جنبش به فرهنگ ایرانیشون سرفراز بودن و بر علیه تازیان و رسمون رسوم اونهایی کتاب های زیادی نوشتن و هرچند اون جنبش ادبی سرکوب شد و به اون آماج یا هدف نهاییش که شکوفایی و زنده کردن ای فرهنگ ایرانی بود نرسید اما خب ایرانیان هم از پای نشستن و به وسیله سیاه جامگان از چند دستگی بین عرب استفاده کردن بنیومیه رو و بسران عباسیان رو که کمی بیشتر به فرهنگ ایرانی تونستن ایران نزدیک کنن جایی اونها نشوندن برحال با این پیکارها و جمعش که از این سو آنسو به وجود می تونستن یک فضایی رو برای ابراز وجود فرهنگ ایرانی پدیدار بکنن خب وقتی ابو مسلم کشته میشه به دست اون امام عباسی و جنبشای پیروان ابو مستم که به خونخواهیش برخواسته بودن اونم سرکوب میکنن و تونستن جنبشای رانی رو تا یه سالیانی دچار شکست بکنن اما خودمون شکست ها یک آزمون های خوبی شد برای جنبشای آیندش که از جنبه منجر شد به پیروزی کسی به نام یعقوب لیس که بنیانگذاره چی بود؟ سفاریا و با اون آزمونها و سرنوشت ابو مسلم بود که یعقوب دیگه سازش نکرد با عرب ها. و حتی در بستر بیماری به خلیفه عباسی پیام میفرسته که اگر بخت با تو یار باشد و من بمیرم و من بمیرم اگر نه میان من و تو این شمشیر داواری خواهد کرد و خب می‌دونیم که پس از اینکه که اینا گذشت قوانین اسلامی هم جاری شد و تا اومدن زمان پهلویا ها و رزاشا زن ها تا, تا موقعی از کار اجتماعی که اصلا رفته بودن بیرون خانه شده بودن اون آینه به صراح جوان مردی که بیشتر در میان زورخونه ها یا میدان های ورزشی بود یا در خانگاه ها به قول معروف ازش گفتگو میشد در میان مردم ایران ببیشه در سیستان و خراسان بزرگ یک نیروی از مثلا جوانمردان گرفت که بهش میگفتن ایاران یا ایاران در واقع و این جوانمردان این ایاران ایاران به نیروی اون پایداری مدی و استاده ایستادن در برابر لیگانگان بگوی. اون هم یه جنبش بود جنبش ایار و میشه گفته که بیشتر این جوانمردان بودن که در جنبش گوناگون اجتماعی سیاسی از اون میان همون سیاه جنبگان جنبش آزرک سیستانی رو داشتیم دینان رو داشتیم و سپس یعقوب لیس که در همه بودن و بسیار سازمان داییم و این سیاه جامعه هم بود که بنی اومدیه رو گفتیم چیکار کردن برنداختن اون آزرک سیستانی یارانش چهل سال جنگیدن و خور هم که به رهبری بابک خور رمدین میدونیم که 22 سال داره برابر ارتش عباسیانی سایی کرد خب زیاد نمیخوام حالا وارد این مسئله جنبش ها که البته دانستنش خوب است حالا یه کمی ادامه میدن حال این یعقوب لیس که خودش هم از جوان مردان بود تونست نخستین دولت نیرومند رو در برابر تازیان به وجود بیاره گفتیم رهبرانش همه از این جوان مردان بودن و الگوهایی داشتن این الگوهاش کیا بودن رسته هم اسفندیار که میشه گفت پحلوانانه تو اون جنبش های خونین جانبازی و پهلوانی میکردن و ایرانی رو پاس می و برای رهایی ایران مبارزه می کرن. و در اون دوران تاریخی که ایرانی دوباره نیمه جان گرفته بودند و خودشون رو در پهنه های اجتماعی و فرهنگی مثلا ورز و نوندیش کرده بودند، در بخارا کتاب بزرگی که تا اون زمان تو جهان نبود و مانند همون گندی شاپور زمان ساسانیان از نو می سازن. و در اون فضای تازه که فرهنگ ایران شکوفاتر شده بود یه جریانی هم به نام تصوف در ایران زاده میشه و شکل میگیره که اگر بگوییم جهانبینیش در راستای بگونه فرهنگ کهان ایرانی یا همون وحدت وجوده یا همون فرصفی پیدایشیه مثلا فرهنگ ایرانی که به نام سیمرگی هم نامور است. اما حالا اگر بگوییم چرا شگفت نیست که خراسان و به ویژه برخ زادگاه تصوف در ایران بود گفته میشه که تصوف ایران رو میشه تصوف خراسان نام ها زیرا که خراسان هستیگاه فرهنگ هندو ایرانی هم بوده در برخ ما معبد بودار رو داریم آتشکده کده رو داریم اون جشنی کده نوش... نوشاد یا نوبهار اینا همه در کنار هم بودن ها چند که بر بران سرزمین هم چیره میشن اما چون فرهنگ و فلسفه ایرانی در میان مردم اوسامان ببیشه مردم برخ بیشتر زنده بود اون جنبش تصوف هم در اونجا پا میگیره و از اونجا به دیگر نقاط ایران هم گسترش پیدا میکنه بزرگترین پیشوایان تصوف ایران هم در نخستین دوران رواجش ستن بودن از سرزمین برخ که نامشون هم به جا مونده یکی ابراهیم اطهم بود نامش پور علی شفیق و حاتم عسم که اگر نگاهی هم به گذشته بکنیم میبینیم خودش و زرتوش سنایی مولوی اینها هم از آن دیار برخواسته بودن. درود بر خراسان بزرگ درود بر همه این مردان و زنان ایران زمین که در راه زنده نگاه داشتن سرزمین خود و فرهنگ خود کوشیدند جان دادند جان باختند و امروز این سرزمین به ما رسیده به دست ما رسیده ببینیم که ما کار میخوایم باهاش خب دوستان یک ساعتی رو در خدمتتون بودم من یک نگاهیم بندازم که ببینم پرسش چی آمده یک پرسش یکی از دوستان در اینجا در انداختند و پرسشون به این صورتی که به عنوان یک با مالی بهدین با مانیک بهدین میخواهند که با واژه های خودشون ما قصد داریم تولید محتوا داشته باشیم مطلب بنویسیم و منتشر کنیم فیسبوک های ما پر شده از مطالب تکراری و تولید محتوا تقریبا نداریم یا خیلی کم هست بیشتر میخوا بدانم که نوشتن پیرامون چه مطالبی را مفید میدهد خب این که مطالب تکراری البته تکرار بعضی چیزها ایرادی نداره چون با یک بار و دو بار گفتن و نوشتن حتی با چندین و چند بار گفتن و نوشتن خیلی چیزا جا نمیفته اما در مورد چی؟ در مورد تمام این عرضش هایی که ما به نظر من باید اونها رو زنده نگه داریم عرضش هایی که از دست دادیم و هایی که بنیان های فرهنگ و آین ما بودند و اون بنیان هایی که بسرها انسانی هستند و هر زمان و مکان ندارند و شوربختانه میبینیم که بسیاری از اینها با اون چیزهایی که از درون میهند میشنویم بسیاری اینها خیلی وقته که به گوشه رفتند یا خیلی جا از میان رفتند راستی و درستی در, در واقع ابتزار قرار نشدن اون عرضش های انسانی، خانوادگی چه بگویم؟ اینها رو که شاید خیلی چیزای پیش پا افتاده که نمیشه گفت ولی بنیادین پایه‌ای هستند ولی شوربختانه از درون ما خیلی ها رخت بربستند اندیشو گفت ها که دانید به شیوه های گوناگون به شکت های گوناگون پیمان نگه داشتند بر سر حرف خود ایستادند و باز بخوام اگه در یک در واقع واجه اینو کوتاه کنیم همان راستی و دوری از دروغ این بزرگترین چیزه مهر ورزی به هم رسیدن کمک به هم کردن با هم بیگانه نشدن در مورد این چیزاب بنویسید در مورد این چیزاب بگید فقط هم نیست عمل کنید بهش کردار داشته باشید از هم دوری نکنید هر جا هم دیگر میبینید روتون رو, رو بر نگردونید هر مشکل دارید با هم دیگه حل بکنید در کنار این که در حالا آنها که در داخل هستیم در, ا... در اون یه جوری اونها که در بیرون هستیم یه جوری هر حال جا که در مسئله اروپا به گونهی گفتن اونها مگه چکا کردند؟ اونها هم همون ارزش هایی رو که انسانی بود به میان کشیدن انسان رو و های انسانی رو در مرکز میگذاریم و در مورد اینها بنویسید دوستان و البته در مورد هنر دانش همه رقم اینها هم چیزهایی هستن که شوربختانه روی اونها در واقع خط بطران کشیده میشه در درون این چیزی که امروز وجود داره هنر دیگه چه هنری فقط یه سری هنرهای به قول معروف حالا اونا یه واجه خودشون دارن ولی اونا هنر نیست از موسیقی بگیر تا دستفشانی و پایکوبی تا از نقاشی و خلاصه همه رشته هنری دانش، دانش نووین، دانش نوین دانش نیک دانش خوب همه اینها جای نوشتن و گفتن و دانستن و با همپرسی، همون دیالوگی که گفتن هم پرسی و با هم پرسیدن به دنبال راستی ها باشیم و این برنامه ها در واقع میشه گفت که در این راسته هستن یا به گنا پیدای مثلا تکنیکی و هرچی که هست یک نفر گفته میکنه اما در جاهای دیگر با هم میتونیم بگویم و بشنویم و بنویسیم و با این امید که بتونیم اون عرضش ها رو هم زنده نگه داریم و هم زنده بکنیم و با اونها یاندام رو بسازیم. بسیار خب سپاسگزارم از اینکه به سخنان من گوش دادید و پرسش‌های دیگری هم که دارید مرنم همیشه برای من بفرستید تا من هم بدونم که بیشتر در چه چیز در مورد چه چیزهایی می‌خواید بشنوید و من هم بتونم آن چی که از داستان برمیاد در این راه براتون انجام بدم. با همتون به بدرود میگم شب بخیر خدا نگهدار و تا درود دیگر بدرود